بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صد الله حالا نبینا و محمد و آله اجمعین ما یه درس رو شروع کرده بودیم تحت عنوان توحید یک تا پرستان دو سه جلسهش گذشت رسیده بودیم به اثبات ذات خدا ما برای این که نیشون کار تازه قرآنی چیه؟ بعد نیست که همیشه اقوال علمای گذشته را بگیم که متکلمین گذشته به کجا رسیده بودن حالا ما چی داریم میگیم در همین اثبات وجود خداوند ما دو تا متکلم خیلی برجسته داریم یکی قدیمی قرن هفتم هجری بوده 660 بود شده که امام فخرالدین راضی بهش میگردیم خطیب راضیه که صاحب تفسیر کبیره در تفسیرش هم خیلی ها کرده و این حرفا ولی اشعری جبری حسابیه همش میخواد اثبات جبر کنه ما با اثبات جبر با تکلیف نمیستازه که خدا بیا تو رو بگی به تو بگه اون کار رو نکن بعد تو رو مجبور بکن اون کار رو بکنی بعدم هم عذابت کنه خدا توهین میکنی اوه خدا میگه دروغ نگو. بعد تو رو بادار کنه دروغ بگی. خارج از اختیارت. بعدم روز قیامت میگه چرا دروغ گفتی؟ تو خواستی. برو عذاب بشو. چرا منو عذاب میکنی؟ خودت منو کشتی به این کار. جبری بشتی. در غذا جبر از قدر رسواتر است چون که جبری حس خود را منکر است. ببینه خودش داره میکنه به اختیار. از کنم با تپک گور، کسی با نکرده باز میگه خدا کرد توهین میکنه با خدا به هر حال حالا مجذوب این شعرهای مولوی هم نشینا از این طرف اینو میگه این که گوی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار از سایسنم از این طرف میگه حضرت علی به املمالجم گفت قمه مخور پردا شفیع تو منم مالک روهم که تنم آلت حق یا فائل دست حق کی زنم بر دست حق من تن و دق خدا به دست تو تو سر من میزنه اه. خود خدا گفته به من یک طول مؤمنان متعمدن فجازاه جهنم هرکی مؤمن رو متعمدن بکن جهنم میره اه. چیزو میگی خدا به بعدم اگر این آلت دست خدا بوده ابن ملجم شفایل لازم نداره قم خور پرده و شفیه تو منم این کارو برد نکرده که تو شفیهش بشی جناب مولوی از این طرف این میگه از این طرف میگه این که گویی ای این کنم یا آن کنم خود دلیل اخیار است ایسنه جبریه دیگه حالا یه کسی یه حرفایی ما رو شنیده بود رفته بود خونش به مادرش پدرش کفتی بود با این مغلوی هم انحرافات آ آه آه, آه آه چپته شده تو کیستی که به مغلوی بزرگ و خواهی ایراد بگیری توانت بچه سرت رحم در آرده حق نداری؟ خبا جان هرکی حرف حق میزنه باید پذیرو ولو یه بچه باشه حرف استدلالی رو باید پذیرو چه جمعون میشه پیرمرد باشه زن باشه مرد باشه دشمن تو باشه، دوست تو باشه، هر وقت حرفت حق داده قبول باید بکنی دیگه. حال امام فخر رازی از امتیازات بزرگی که داره همون تفسیر قرآنی که نوشته ولی جبری محض. خیلی میرسه به ختم الله علا قلوبهم مثل که دیگه دریاه، حقا یک برش کش ها ببینه این چه دو خدا مهر میزنه بله اینالذین کفرو سبان علیه منظر رو ختم الله اون که این کار حق میکنن است که اون رو دعوت کنی نتمین ایناست که ختم الله علا قلوبه ولتبه الله علا قلوبه به کفره بلا یعمنون علا قلی به سبب کفرشون سلب توفیق ازشون شده به هر حال این مرد بزرگ بزرگ میگم خیلی زحمت ها کشته کارها کرده تفسیرها ها نویشته کار کتابی داره به اسم الاشاره بی اصول الکلام اینه کتاب های متعدد داره بعد اینجا میخواد اثبات وجود خلاون بکنه بایدین قدما چه جلی ما سان تو چرا هی می‌رفتن حالا ما چی می‌داریم می‌گید وقتی می‌خواد اثبات وجود خدا بکنه فی اثبات ذات تعالی اصلا من میگم کلمه اثبات برای خدا خدا امر ثابته ما بعد به اون پی ببریم اثبات بکنیم او رو که او وجود داره را افتخار کنه که مش بندگانی پیدا شدن او رو اثبات بکنه اثبات یعنی چی وی امر ثابته ما خودمون بعد اثبات کنیم که مردنی و فکستنی هستیم <تصفيق> ما ساشیم <تصفيق> نا چیزو بی اهمیتیم اثبات ذاتی تعالی خوب، بعد حالا کاری بیم نداریم میگه الاجسام الاجسام لا تخداو ان الحبادث وما لا يخداو ان الحبادث فهو به حدث فالاجسام ازن مهدسه ولها خادقان مهدسان چی میگه؟ میگه تمام اجسام خالی از حادثه نیستن دائما اجسام تغییر میکنن یا حرکت میکنن یا سکون دارن یا شکلشون عوض میشه یا میمیرن یا پرند میشن اجسام اینطوریه. پس اجسام خالی از حادثه یعنی رویداد نیستن هر موجودی که خالی از رویداد و حادثه نباشه حادثه چیتا حادثه؟ ماده میگن ماده اصلش قدیمه ازلی بوده این میگه نه اگه ماده ازلی و قدیم بود هیچ تغییر نمی کرد ازلی و قدیم با حادث نمی سازه این دائما در معرض تغییره من میشه خودشم اصلا حادثه حدوس و قدم که همراه نمیشن با هم یه اجسام که تماما تغییر میکنن حادث میشن یعنی این حالت نبود درشن پیدا میشه هم ام وقت آمدی یه ماده بی تغییر ازلی قدیم هم برایش قائل شدی بعد میگه خیلی خوب حالا این دلیل من قبول نمی کنی که عضوام از کلامم که دائما حوادث مختلف برشون میاد اینا آغاز دارن به چه دلیل آغاز دارن میگن نگاه کنین یه ستاره ای هست که حرکت میکنه یه ستاره دیگه هست داخل او داره حرکت میکنه وقتی که این یه دور میزنه اون سه چهار تا دور زده در پلک یاد هست دیگه دون کشکش ستارهای هستن مدارشون بسیلتره ستارها هستن میگه خوب اگه شما بگی اینا از ازل بودن باید هر دوشون بی حرکت کرده باشن درسته دیگه ابتدا نداشتن ولی یکیشون زیادتر از دیگری دور زده مگه میشه دو تا بی نهایت باشه یکی زیادتر از دیگری باشه پس اون محدوده پس اون صد هزار زده این صد ده هزار زده هر دو محدوده حالا که محدوده پس این آغاز داره. تمام آلم حدوث پیدایش همه آغاز دارن همه شروع شده پس آغازگر دارن آغازدهنده دارن حالا به به تفصیل اینا رو گفته من حالا خلاصه شیر گذشته‌اشو براتون این یه بخشی از کتابش این دل امام فخرالدین محمد بن عمر بن حسین رازی اسم جدش هم عمر بوده شیعه ها خیلی بدشون میاد ولی <تصفيق> اهل ری هم بود ایرانی بوده ایرانی ها قبل همه سنی بودن بعد زمان صفویه غالبا سنی بودن شیعه شدم نه علمای بزرگی هم فخر رازی آره در نسبت نسبت ری یه زه اضافه میشه رازی خب حالا این مال گذشته قرن هفتم بوده یعنی شیشصد و میشه قرن هفتم از شیشصد تا 700 قرن هفتون قرن هفتم میشه یک دانشمند دیگه ای بوده معاصر با ما خیلی مرد بزرگ بوده یک کتاب من بر بارش نوشتن شیخ محمد عبدو مصرح بزرگ مصر این مرد بزرگ شاگرد, شاگرد اول سل جمال الدین بوده درس های حکمت رو از سل جمال گرفت سل جمال ای بوده بعد این یه کتاب می نویسه به اسم رسالت و توحید از شیخ محمد می می‌بینی آره رسالت و توحید یه عالم کردی به اسم احمدی یا احمدیان آره اون ترجمه هم کرده خوبم ترجمه کرده ببینیم حالا این که یک متکلمه بزرگ عصر جدیده این چی میگه این چی میگه؟ فخر رو که دیدین چه راهی رفت؟ اون یکی از راهش بود. راههای مختلف میره. این یه کتابی است که حتی یه عالای مسیحی گفته که اگه پیغمبر اسلامی کتاب گفته بود من مسلمان میشدم. ولی این شیخ محمد عبدو گفته. بقول شیخ محمد عبدو خودش مسلمان بوده. خودش این کتاب در اثبات رسالت پیغمبرم نوشته. تنها تویید نگو. این میگه الممکنه موجودن قطعاً و وجود ممکن یک تضی به ضروره وجود الواجب دو تا قضیه رو آورده میخواد خدا رو ثابت کنه به خدا میگن واجب الوجود یعنی ذاتی که عدم بر او محاله ماها ممکن وجودیم. یعنی عدم بر ما ممکنه یه مدتی نبودیم 500 سال پیش نبودیم حالا هستیم 500 سال بعدم نیستیم ما ممکنیم مثل اون درخت مثل اون گل، مثل اون پلک میگه قضیه اول یک موجود آن قطعا قطعا ممکنه وجود هست در آلم حتی پیغمبر ممکنه وجود بوده برای که از ظاهر فوت شده اون آثار و اون حرفها و اون صحبت ها و اون عرکات اون همه رفتن دیگه روح مقدس تو آلم دیگه است پس این عالم تمام ممکناته حتی ما دینم میگن روز این عالم نبوده به این صورت یه انفجار عظیم شده خب قبل از این انفجارم با یه چیز دیگه بوده پس بنابر این عدم نفوذ داره در عالم دائمن از اشیا تغییر پیدا میکنن هی اون صورتشون معدوم میشه صورت جدید میاد اون شعر مولوی رو که شنیدی از جمادی مردم و نامی شدم یعنی من خاک بودم و وقتی گیاهی منو مکید و مواد غذایی من دیگه تبدیل به گیاه شدم یعنی اون جمادی مرد صورت گیاهی اومد از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم اون گیاه سبز رو یکی خورد و نوتشول و از کنم که آدم شد، دو تام شد بود اسپر حیوان هی... دیگه مثل حیوانات. پس جماد بود و نبات بود و حیوان بود و انسان شد. وزنما و مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوان و آدم شدم از سه ترسم کیز مردم کم شدم. هر لفگی از صورتی رفت، یه صورت بالاتر اومد. حالا اگه من بمیرم چه ترس دارم؟ با میرم توی عالم بالاتر از نما مردم به حیوان سر زدم مردم از حیوانی آدم شدم از چه ترسم کیزم وردن کم شدم نشعه دیگر بمیرم از بشر تا برآورم از ملاو اکبال و پر میرم توی عالمه ارباق ملکوت درسته آره از ملک هم بایدم جستنز جو یعنی خیال بافی شده کلشه این حال کلا و چهو بعد یه چیزایی دیگه میگه که اون بقیهش درست نیست و از ملک هم دوستان جستنز جو کلشه این حال کلا و چهو مرگ دان. چون اتفاق امت است کاب هیوانی نهان در ظلمت است آنچه از دریا به سهرا میربد از همان جا کامد از همان جا میربد رودخونه هایی که از دریا سرچشمه گرفتن بالاخره باز به دریا میرسن یعنی ما از ذات خدا سرچشمه گرفتیم دومتی میریم وارد ذات خدا میشین. نه قلطه خدا زایش نکرده که ایجاد کرده اون آب دریا زایشه جدا میشه از آبهای دیگه دو انته ملحق میشن به هم الهاق وصل و قطع ما مخلوق خدا هستیم این ما هم روح و در شیعه این روح کن فا یک اون ایجاد کرده ما رو به همی رجوع به خدا یعنی چی؟ انا الله و انا الیه راجعون یعنی رجوع به رحمت خدا ها یا ایته نفس مطمئنه ارجعی الی ربک به سوی خدای خودت برگرد راضیه مرضیه خدا از تو راضی کام از خدا خوشنود بعد خود اون فی نه فی ذاتی بعد خود اون فی عبادی خلو جنتی وارد خلی چون خطاب به نفسه نفسه مؤنثه پدخلی پی عبادت زمره عباد من داخل شد در جنت من داخل شد نظر ذات من پدخلی پی عبادی پدخلی جنتی خدای تعالی گفته هر کسی که احاته به قرآن نداشته باشه تفسیر غلط میکنه رجوع به خدا خدا میکنیم انا لله و انا اله راجون این تو ذات خدا دیگه ولی این آیا رو بخونیم ذات رجوع رو تفسیر میکنه رجوع به خداوند، رجوع به بهشت، رجوع به یا حتی رجوع به دوزخه اونام به خدا رجوع میکنن این هم وارده دوزخه یعنی امر امر خداست اونجا خدا میگه اینطور بشه خداوند آره بل کذبو به ما علم یهی تو به علمه ولما یعتهم تأویلو تکثیب کردن چیزی را که آهاته علمی بشه ندارن و هم پرشون نیمده هنوز پس وقتی انسان احاط می نداشته باشه قرآن رو تکسیب میکنه یه آیه میاره که اینا ها من و ها دوستا بین و نصارا اینا ها اهل بشتن پس تمام این یهودی ها و معاند و مسیحی همه اهل بابا این داره در زمان خودشون میگه یهودی در زمان خودش بوده پیش هم ماضیه مسیحی در زمان خودش اونا در زمان خودشون امروز و من یبتقه غیر الاسلام دینن فلن یقبلمه غیر از اسلام دین قبول نمیشه حالا اگه نفهمید باشن خلابانستون بگذره بگه مستظفن نفهمیدن درش نکردن اما اون کشیشهاشون که به شارنش پیانبر خوندن تصبیق کردن تو ذهنشون با محمد صلی اللہ علیہ پر ایسا فرمود کریس این جهان می آید شما را به جمعی الاسی ها هدایت می کند زیرا از خود سخن نمیگوید، گوید اون چه شنیده از خواهد گفت وقتی که تطبیق کدن باید حقایقو بگن برای مرزان باید بگنیم انجیل بشارت داده که رئیس معدوی این جهان میاد مرزان هلایت میکنه بعد قبول کنیم بپذیریم مسئولن جهنم میرن اگه نگن مسئولن دیگه اینطوریه خب سخن از شیخ محمد عبدو بود رحمت الله علیه. زین میگفتش که دو تا قضیه است یکی ممکن در این عالم وجود داره و دیگر این که ممکن به ضرور به واجب منتهی میشه. این دو تا قضیه است که باید هر کدومش اثبات بشه. ممکن وجود داره ما هرچی چی نگاه از انسان و نبات و جماد و اینا همه احوال گوناگون دارن. پس ممکنه به این شکل باشه ممکن به اون شکل باشه ممکنه نباشه ممکنه باشه ممکنات محسوسن این مسلمه ولی اینکه ممکن به واجب منتهی میشه این اثبات میخواد برای اینکه ببینید اگر به اصطلاح اصل نور نباشه دیوار روشن پیدا میشه نه باید نوری باشه تا دیوار روشن اگه اصل رطوبت نباشه درسته؟ فرش مرتوب پیدا میشه؟ نه عبای مرتوب پیدا میشه؟ نه بنابراین در هر چیزی اگه اصل چرمی نباشه پلوی چرم پیدا میشه؟ نه شیرینی چرم پیدا میشه؟ نه چون اصلش نیست اصل ممکنات واجبه برای که ممکنات ممکنه باشه ممکن همه علت میخواد یه علتی بعد وجود اینو تعریف بده بنابراین اینا اصل وجود نیستن اینا فرع وجودن تا اصل نباشه فر وجود نداره بنابراین اصل وجود ذات احریتی که واجبال وجود باشه ای همه هستی ز تو پیدا شده خواب که زعیف پس تو تبا نا شده چقدر حال داشتن شعرهای قبلی با حال شر میگفتنم آنچه تغییر نپذیرد توی وان که نمردست و نمیرد توی ما همه پانی و بقاب از تو راست ملک تعالی و تقدس تو راست از پی توست این همه امید و بین الله اکفر چه شعری گفت هم تو ببخشا و ببخشای و ببخشی کریم کریمش رو دیگه باید کشید. ولی نظامی یه گنجبی مگه؟ قدیم، شیه شرایق زیق سبز و داده بنفشه بلندم شیشه و پلات. خیاره جدید پای اونا نمیرسه به هر حال پس بنابر این واجب بوده که ممکن آمده ولی که واجب اصل موضوعه ممکن فرعه ممکن معلوله به علت علت میخواد چرا اینطوری شد چرا اون طور شد بنابراین اون بی علت مقدمه بر این معلوله علت داره شیخ از این راه رفته ابن سینا از همین راه رفته از کنم که فارابی هم از همین راه رفته سلام از همین راه در اثبات و باجب المجون. آره میگن اون وجودی که واجبه و عدم بر اون محاله ذات احدیته وجودات ما واجب نیست عدم بر ما محال نیست تا اصل نباشه فرق نیست تا اصل آب نباشه که دیوار مرتوب پیدا نمیشه تا اصل چربی نباشه که پرویچر پیدا نمیشه اصل باید باشه تا فرق پیدا بشه اصل وجوبه پس پلاوند وجودش مقدمه برماست، وجودش بی علته اینا هم از این راه ربطه درسته خب قرآن کریمه هم گفته کل روشتای این حالک اللا وچه ها. همه چیز در محرز زبال و حلاک هم. مگر ذات واجب وجود که اون عدم برش هر محاله نمیشه میشه با این آیات تدبیق داره که فارابی در فصوص الحکم با این آیه تطبیق داده همین بحث وجوب امکان و امکانو آره تطبیق داده بعد خب بنابراین این بریم حالا بر سر اینکه این دو تا متکلمی که قدیمی فخر رازی بوده یکی هم نسبتاً معاصر با ما بود در قرن گذشته مفتی مصر بود از کانم که آره فتواه رو چند فکرانم داد و اینا خدا رحمتش کنه؟ خود شد ولی تاثیر گذاشت از سه جمال جدا شد سه جمال رو گفت باید بریم رو ها رو اصلاح کنیم شیخ محمد عبدالب باش همراه بود گفت نه مردم رو اصلاح کنیم اینالله هلا یغیر ما به حتی یغیر ما به انفسه مردم رو کنیم به طرف قرآن اون رفت ترکیه که سلطان عبدالحمید رو درستش کنه بعد بگید دو مرتبه خلافت گذشته رو تجدید کنیم کشفرهای اسلامی رو همه رو متحد کنیم با هم ولی همونجا یا مرد یا کشتنش خلاصه هیچ پایدم نکنیم ولی شیخ محمد عبدالحم رفت و مفتی مصر شد و ها داده که تفسیر المنار رو نوشته و او سرسله ها کرد بسیاری از روشنفکران مصر همه تابش دادن اسمشو الاستاد و الامام گذاشتن و خیلی در مردم در جوامه بشری تحصیل گذاشتن نموند تمام بکنه تفسیرشو اخیرا از گنبت قابوس از اونجا عده پشنا دارن این تفسیر رو ترجمه میکنن به پارسی دیگه آمدن به من اصلاح کردن که شما یه مقدمه بمیست و ما یه مقدمه نوشتیم و دیگه نمیدونم که کجا رسیدن به اجازه دادن تفسیر خیلی خوب مهمیه به هر حال آره اینم ما در محمد عبدو که این استدال واجب و ممکنه اینها را آورد. ما ترد تفسیر یه آیه قرار گرفتیم در سوره چی؟ سوره فرقان خلقه کلشه فقط قدره و تقدیر هر چیز رو آفرید و هر چیزی رو اندازه داد خب قدره یعنی اندازه داد تقدیر یعنی چی یعنی اندازه دادنی یعنی چی هر چیز رو اندازه داد اندازه دادنی یعنی چه اینو بهش میگن مفعول مطلق برای چند کار چند چیز به کار میری یکی برای تاکید فسبح الله وتسبح برتری داد خدا رو چه برتری؟ یعنی خیلی یکی برای بیان نو جلسه جلسه تل امیر جلسه مستره مثل پاچه ها گرفت نشست و همچنان استعمالات زیاد داره اینجا قدره تقدیره خدا هر چیز آفرید و اندازه, داد اندازه دادنی یعنی اندازه لازم هر چیزی اون اندازه لازمش رو بهش داد آره. نوع اون اندازه رو چیزای دیگه زیاد بهش نمیخوره اون معانه دیگه این معنی بهتر میخوره خب حالا که خدا هر چیز رو به اندازه خلق کرده اندازه لازم پس همه اشیا محدود اگر از محدودیت ها رد شدیم به خدا یعنی اون نامحدود میرسیم علم قدرت نامحدود که حاصل داره بر همه آدم چجوری ثابت میتونیم بکنیم اقلا که همه چیز محدودن آقا اگه آهن نامحدود بود دیگه جا برش چیز دیگه نمیزاش هر چی میدیدیم آهن بود دیگه چوب و مثل و پالا چیز نبود چون اگه اونای دیگه هم بودن پس این اندازه معین داره اگر گوشت نامحدود بود هرچه میدینیم گوشت بود پس چون همه اشیاء مختلف هستند، همه بلا زیاد هم باشم هم باشن محدود هم خوب خودام اگه محدود بشونم داخل ایناست پس اون نامحدوده اون حدگذار اندازه دهنده است خودش بی اندازه علم و حیات بی اندازه چون عرب نمیتونست تونسته بی نهایت بفهمه عدد بی نهایت یه اختراعه اعداد و بشر می دونستی ولی بی نهایت بعد کشت شد تو تاریخ ریاضیات نوشتن عدد بی نهایت فکر بشر نمی به اون اعداد کشف کردند کردن فیسا گورست زرد شد. ولی به بی نهایت بعد پی بردن یا باشه باشه اون وقت قرآن واسه که به عرب ها بی نهایت رو نشون بده میگه اگه هفت دریا و مرکب شوند تمام درختان زمین قدم شوند بخواهن معلومات خدا رو کلمات الله بنویسن همه همین پایان میپذیر کلمات پایان نداد یعنی بی نهایت به این صورت معنی بی نهایت خاصه تو ها؟ معنی با محال رو محالم یه معنی داره خواسته برسانه به عرب گفته چنان که شطور از سوراخ سوزن رد نمیشه محال مشتکان و کفار وارد رحمت و بهشت خدا بشن داخل دوزن خواهد محال. با این مثالها خواسته محال و بینهایت و اینا رو به ما بپهمونه ارزش داره خیلی ارزش داره میگه برای خدا فرق نمیکنه، شما شون بلند آصابت کنی بس ما فرق میکنه. یه تو تاریکی را برین یا تو روشانیم بس ما فرق داره سباون علیکم من اثر القول و من جهر به و من هو مستخفن باللیل و ساربون بالنهار موسابیش رو میگه هواش بگه بلند موسابیه نه اینکه خدا اونم میفهمه اونم میفهمه نه مساویه الله اکبر این چه علمیه که مساویه فریاد بزنم یا تو ددم هر بزنم تو تاریکی و ظلمت قایم شده باشم یا تو آبتاب و روشن مساویه نه اینکه که هر در رو میفهمه خدا میدانی خداشناسی عجیب غریبه علم متق اینه دیگه چیزی در او خدا فکر نمی کنه بلا روییتن اجاوله ها ولا حرکتن استفاده ها نفتر براغ است ولا همامات نفس دستره چون شما فکر میکنی بخواه از مشغول به معلوم برسی فکر میکنی استعداد میکنی یه چیزی رو نتیجه بگیری پیش خدا همه چی حاضره فکر نمیکنه علم مطلق اونجا خدا عقل نداره <تصفيق> اگه بگیم انسان عقل نداره یعنی خود دیمون است ولی در مورد خدا این عقل مخلوقه یه قوه‌ای است که به وسیله این ما اشخاص برای خدای قوه‌ای که به اشخاص بفهمه نیست همه چیزو میدونه همه چی علم محضه نسبت به شعور به خدام به خدا عالم گفتن ولی عاقل نگفتن خدا ده عاقله، هر عاقل مال انسانه، عقل خدا بهشت ولی علم مراتب داره مثل نوره. یه نور ضعیف هم نوره، خورشید عالم افروز هم نوره. علم هم ذو مراتب. مقوله به تشکی که به قوله ملاصلا. به هر حال اینطوریه. خب پس خدا میفرمايد که خلق کل شيء فقدره و تقديره. همه اشیاء محدودن حالا کل محدودن مخلوق هر محدودی حتما مخلوقه به ذات خودش موجود نیست چون اگه شما میگی یه چیزی به ذات خودش محدود یه متره خب چرا یه متر دیگم که فرضینه که از همین جنسه و عیناً مثل همینه اون نیست پس این هم به ذات خودش بعد باشه هم به ذات خودش نباید باشه نه پس باید متر دومم باشه متر سبومم باشه چهار چارومم باشه چیزی که به ذات خودش هست نمیتونه حد داشته باشه و چون همه موجودات مخلوقان هیچ کدوم به ذات خود نیستن همه ذاتشون از جای دیگه آمده که محدودشون کرد و او که به ذات خود هست نامحدوده او نامحدوده الله اکبر انسان اگه یه علمی در کسی ببینه الامن بهش میشه یه قدرت زیادی ببینه می حالا علم بی نهایت اونجاست قدرت بی نهایت اونجاست کمال بی... زن من گریه میکنه میگه خدا تنهاست یا این تنهایی واسه من و تو عیبه واسه اون شریک داشتن و همراه داشتن عیبه بابا اون هرچی میخواد داره بی نهایت همه چیز داره ابن سینا میگه مبته به ذاته شما یه چیزای قشنگی که فهمیدی چه کیف میکنی با خودت که اینا رو من فهمیدم ولو هیچگی هم نباشه یه چیزای مهم میفهمی فهمیدید همه اسرار بی نهایت اونجاست مبته جن به ذاته یعنی ذاتش از ذات خودش در کمال عشقه به همین جد مخلوقاتش هم دوست داره مگر خلاف رضای او حرکت کنه به اله همه چیز دوست داره به جهان خرم از آمونم جهان خرم هست آشقم بر همه آغلم که همه آغلم از او خدا همه چیز دوست داره به اون کفار میگه کافر بدبخ عوضی میری من تو رو دوست دارم نرو از اون را بیچاره میشی بالاخره عالم امکان شررم هست دیگه تصادمه برخورجه از برخورج دو خیر با همکای شر پیدا میشه توی این عوالم شررم ظهور میکنه خود پلسکافی شر خودش که بحث و پستر جدایی داره خب آره اینطور حالا مادین چی میگن مادین میگن تأثیر متقابل دادن روی هم این تغییرات مال اینه راستا میگن اما, اما وقتی که این اون از بین میبره اون اون از بین میبره هر دوشون در مقام امکان هم. واجب که از بین نبیده هر دو پانی هم وقتی من یکی از بین میبرم اونم من از بین میره هر دو پانی هستیم هر دو از بین روانده هستیم واجب نیستیم قدیم نیستیم ازلین نیستیم ثابت نیستیم کلو شیفه هولک الوت هم کل شاین هاول که و خوش نغمی است یعنی الا و دولت او دولت پاینده کو چقدر قشنگ گفته؟ این شاعری که نگفته گفته پسر اموی بدر من بوده گم شده هر گشتن خانوادهش کجا رفته مرده از خودش شینده میشه رو کل شاین هاول که و خش نقمه ای است یعنی لا دولت او دولت پایینده کو و سلام